اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين اللهم كل ما لديك فضلا حسان صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة خریم حافظم و قائدم و ناصرم و دليل و عینا حتی تسکنه اردک توعا و ها طویلا السلام علیکی یا مولاتنا یا قرومت الزهراء السلام علیکم یا احرابیت النبوه خب در همین بحث نقد عدلی وحدت شخصی وجود به عدلی عقلی حالا بحث تاریخچه چه الحمدلله تموم شد و وحدت وجود تاریخش در هند باستان یونان باستان اجمالا بررسی شد و حالا می شود رده های دیگری برای این وضعیت شخصی پیدا کرد که دیگه نیازی به همون نبود و مدعایی که ما داشتیم و سببی که برای اون به تاریخ چه مراجعه کردیم برای اینکه بگیم اینها ادعاهای جدیدی نیست مطالب امنیری نیست اینها سابقه های قدیمی داشته در ادیان غیر دینی غیر الهی و غیر اسلام اینها ها موجود بوده خب صابت شد اما بحث مهمی که هست اون بحث عدله عقلیه وحدت شخصی وجوده همینطور که قبلا بحثش هم گذشت خب خود ابن عربی در چندین جا کرارت این رو گفته بود که اصلا بحث وحدت وجود و وحدت شخصی وجود و بحث ارفان و اینها از جمعه بحثهایی نیست که با عقل بشه سراغ اونها رفت و چندین جا گفته بود که این تناقض صریح این مثل جمع بین متضادین که اینها همش محال است و تعبیر بود که علاوه اینکه اینها این هست با عقل هیچ راهی برای درک این نیست اما شما بالاخره باید این رو بپذیرید خب نظر ابن عربی این بود و قبلن هم بیان شد اما خب طبعا توی فضای این مباحث طرح شد که قبل از این فضا، قبل نظر از ابن عربی کسانی به اسم فیلسوف و اینها در خود جامعه اسلامی اینها ظهور کرده بودند. و خود ابن سینا آمده بود کسان دیگری آمده بودند و مباعث فلسفی رو ترک کردند قبلش فارابی و کسان دیگر و روی چارچوب عقل مطالب زیادی ترک شده بود و چه بسا حتی در فضاهای مثلا دینی و و فضاهای شیعی هم مثلا دلیل عقل دلیل مهمی بود لذا خب این حرف دیدن که حرفی نیست که قابل تح باشه میگه من یک حرف رو میزنم به حساب عقلی این حرف محال اما شما باید بپذیرید خب این که قابل طرح نیست و قابل دفاع هم نیست و بعد از ابن عربی از خود شاگردان ابن عربی قونوی گرفته و بقیه خیلی در صدده این برامدن که برای این حرف هایی استدلالات عقلی ج معمولا طریق استنباطات عقلی اینه که انسان از یک برهانی به یک مسئله میرسد اول دلیل عقلی قائم میشه بعد از دلیل عقلی انسان خب به اون مدعا میرسه اما در اینجا مسئله برعکس اول مدعا طرح شده بعد دیدن که خب اینطور قابل دفاع نیست قابل طرح همگانی نیست لذا دنبال این رفتن که براش دلیل هم رخته جور بکنن لذا خب طریرهایی برای این جخته جور شد و سعیف کردن سراسامون بدن تا رسید به خود صدرا که خب صدرا هم ابتدا اصلا در این منش نبود مشکه بخورده مشرایی داشت و و بیشتر شبیه بود و ابن سینا اما خب خودش هم میگه بعد از ریاضاتی که من کشیدم و اینها کانو ما اخیلت میخورده که برای ما ملموز شد که این ریاضات چه ریاضاتی بوده خب میگه من این مطالب رو بهش رسیدم و اینها رو همه رو مثلا شبود کردم خب الان با اون سابقه فلسفی که داشته خیلی کمک میکنه درامه برای اینکه این مطالب سر و سامان عقلی بگیره و الانی که دیگه نه اصلا این رو کاملا مطابقه با عقل میدانن و همین معاصلین خودمون از کسان که قائل هستن اصلا امددری یا که از مهم رو دلیل عقلی میدانن و قائل هم هستن بله اگر چیزی با عقل نساخت و معال عقلی بود به هیچ نحوه قابل پذیرش نیست. نه اطلاقا فضای بحث ما خود راحت‌تر شده با کسان سر و کار داریم که نه اونها خلاص دستش رو پیش گرفتن که پس نیافتن یعنی خودشون اتفاقا مدعی این هستن که عقل اتفاقا داره اینو میگه در فضای فلسفه فعلی و در فضای حوزه سلام علیکم الان همش همینطوره یعنی همه تصادفی که اینو رو قابل داشتن یکی از مهمترین ادله خودشون دلیل عقلی رو میارن تو و میگن که حتماً دلیل عقل به این افاده میکنه اگر شما برای اثبات کردید که بالاخره این با عقل نمیسازه و محاله است قبوله ما هم قبول میکنیم که این دلیل اقلی و بالاخره وقت شخصی باطل است خود ادله شخصی هم باطل است فضا خوب در فضای تری هستیم مثلا بحث ادله اقلی اهمیت بسیار ای پیدا کرده حالا قبل از اینکه به ادله اختصاصی بحث وقت شخصی وجود برسیم خب خیلی من که اصلا فضای طرح وحدت شخصی وجود به صورت عقلی ها همه متفره بر بحث اصالول وجوده یعنی اول باید بحث اصالتو وجود ثابت بشود که بالاخره یک حقیقت ای هست که همون وجود هست که سراسر عالم رو پر کرده بعد یواش شواش خود خب ما میکنیم که اون حقیقت وجود همون خداوند متعال هست و وجود یک حقیقت شخصیه هست یک چیز هست یعنی یک مفهوم مشکک دارای مراتبی که ما به مسادیق مختلف بار میکنیم نیست یعنی یه حقیقت مثل من و که هر کدومون یک شخصی داریم، تشخصی داریم یک ممیزاتی داریم این وجود هم یک حقیقت واحده از که این ممیزاتی داره مشخصاتی داره که اون هم خداوند متعاله که میشه بحتیش شخصیه وجود که حالا لذا خیلی هم تو فضای حتی صدرا همین رو طرح کنن که بگن که خودمونلا صدرا خودشم حالا در بعضی از جاهایی مثلا گفته که من افتدا این حرفهایی که میزنم و بحث وحدت تشکیکیه رو من طرح کنم اینها حالا برای عوام و ناسه یعنی حالا افتدا هم داریم راه می اما آخر سرکار ما همین بحث اسالت الوجود رو میچسبانیم به وحدت شخصیه وجود یعنی اولی که ما وحدت تشکیکیه رو کارو میخواییم توضیح بدیم رو مترخ میکنیم یعنی اولی ابتدای راه برای اینکه ذهنای ذهنهای خود همراه بشه و الله وجود مساویست با وحدت شخصیه وجود ما حالا در در نقد ادله عقل شخصیش نیازی هم مثلا به نقد اسالۃ الوجود نداریم یعنی حتی با پذیرش مبنای اسالۃ الوجود ما اون رو خلاصه سرتاپیشو ان انشالله میزنیم می‌زنیم و هیچ جنبه دفاع عقلانه نخواهد داشت اما حالا برای اینکه کار رو محکم بکنیم و دیگه حالا بالاخره اب تا از مقدمات بعیده هم شروع بکنیم و کسانی که معتقد هستند که نمیدونم خود اسارت الوجود حقه و این مساویس با وحدت شخصی وجود حالا به نقد وحدت به نقد اسارت الوجود هم می‌پردازیم و به بالاخره جاشم هم همین جا هست جایی که ما این اسارت الوجود که اصلا یک پایه‌ایه و یکی از دوتا رکن فلسفه صدرایی حکمت متعالیه رو کسانی هم که قائل حسن میگن کل فلسفه صدرایی که اسمش هم حکمت متعالیه هست که به عنوان یک نظام فلسفی یک نظام عقلانی بعد از حکمت مشاء و حکمت اشراق ظهور پیدا کرده که جمع بین مشائیین و مثلا اشراقیین و عرفان هست که این نظام مثلا کامل هستش و بعضی هم دیدی تعابیر عجیبی در دخا از حکمت متعالیه دارن دو تا رکن اساسی داره یعنی دو تا پایه اساسی داره یکیش بحث اسارت وجوده بحث حیات جوهری که هر کدوم از اینها کده اصالات وجود رو اگه ما بزنیم خب سر تا سر فلسفه صدرا خلاصه زیر و رو میشه یعنی اولیترین و ترین و اصلی ترین بحث فلسفه صدرا همین اصالات وجوده. ازا خب چند منظوره از خلاصه نقد اصالات وجود که ما انشالله به اون خواهیم پرداخت اما مدعای اصالات وجود که این منجر میشود ابتداهن به وقتت تشکیکیه بعدش هم در نظر نهایی منجر می شود به وحدت شخصیه که یه برهانی هم هست برهان صدیقین من حالا توضیحشو نمی بدم برهان صدیقین هست که این مطرح بوده از خود زمان ابن سینا مطرح بوده تا خود حاجی جور طرح می‌کنه اینا تا به ابن سینا میرسه و به سینا. تا, تا به بخش، تا صدرا بله. به صدرای میرسه بله تقلیدهای مختلفی داره یعنی ابن سینای جور تقلید کرده حاجی جور تقلید کرده تا میرسه به صدرای صدرای میرو تغییر می‌کنه که همه اینا معتقد در این برهان صدیقین ما هست که به خود آقای طواتویی که میرسه یه جور دیگه تغییر می‌کنه که این تغییر هم می شود، حالا نظر ایشون اثبات به شخصی نبوده اما می شود این تقریر رو چسبان به بهتر شخصی وجود که اینا همه این تقریر چیه خیلی هاش و بحث همه نسانات وجوده لذا خب ضروری است که عزیزان هم می بالاخره با مباحث بالاخره مطروحه در الهیات در فلسفه صدرالم مقابله بکنن هم با وسایع عرفانی و نقد این مباحث روز در روز که این بحثه شخصیت و این اصالت وجود و نقدش ان شاءالله عزیزان بدانند همون مادهای اصالت وجود چیه اصالت وجود همون از کجا شروع میشه چه بحثی از قدیم من مفرق بوده سلام علیکم و رحمته زباید خواهی شو بارم اینه بحث از قدیم تا مطرح بوده میگفتن که ما وقتی با حقائق مواجه میشیم با هر حقیقتی مواجه میشیم دو تا ساعت برای ما مطرح هست یک سوال اون حلیه بسیطه هست که سوال از وجود اون شیعه هست اون هر چیزی رو هر حقیقت رو که منی که اول سوال مو protein اون چیز هست یا نه وجود دارد یا نه که تعبیر میکنن به حلیه بسیطه که سوال از وجود اون شیعه و یک سوال دوم که حالا بعد از اینکه اون چیز هست حالا اون چیز چی هست حقیقت چیست ما هوه ما چیزی که خط درuno در ملاحظه هر چیزی زمین نمیکنه میشه حقیقیت. あれ بساط سوال از وجوده، علی مرکب سوال از کیفیت از ماهو است که ماهو، که همون ماهوونه میشواد ماهیت، یعنی اون چیز، چیستی اون شیء که ماهیتش همین ماهوه آمده یعنی اه... چیستی و بیان چیستی اون شیء، وجود بیان هستی اون هست، ماهیت بر بیان چیستی اون شیء است. حالا این سوال از قدیم مطرح بوده که خب پس ما در هر حقیقتی به دو تا چیز برخورد کردیم به یک وجود اون شی به یک هستی و چیستی اون شی، ماهیت اون شی. حالا این سوال رو مطرح کردن که کدوم یکی از اینها اصل هست در خارج در اون حقیقت خارجیه در اون حقائقی که ما با اونها کار داریم کدوم یکی از اونها اصل هست و خارجن محقق هست تحقق اینی دارد و کدومی که از اونها انتظار ذهن است پس در اینجا تا اینجا معلوم شد اگر این میگیم اصالت الوجود یا اصالت الماهیت اصالت به معنای تحقق اینی و تحقق خارجیه یعنی اون چیزی که خارج رو پر کرده اون چیزی که موتن خارج فضای اونه جای اونه در مقابلش اعتباریه اون چیزی اون چیزی که فقط در ذهن ما جایی دارد تحقق عینی و تحقق خارجی ندارد و انتظار ذهن ماض و جایگاه ذهن ماست و در مفهومه انتظار با سالت معناش معلوم شد که اینجا منظور چیز منظور تحقق خارجیه حالا در اینجا بحثی ته شده که از خدا بر بعضی از ازمنه تر شد و اینها که حالا خود صدرها این رو سرایت هم میده به خیلی قربترها یعنی ممکنه که چه بسا به این نهر مثلا در خود ابن سینا تر نبوده اما خود صدرها که بعد از اینها بعد از اینکه اینها رو ثابت مباده میگه مثلا ابن سینا از آثارش مثلا فهمیدی میشهد که ایشنا هم اصلافت هست تا حالی که خب اینها تر نبوده اینی بحثای متأخر هست و از شاهکارهایی که خود جناب صدرالم میگم من مثلا به اینها رسیدم البته حالا خیلی از این مزامین در خود حکمت الاشراق کاملا مشهور ده یعنی حکمت الاشراق رو عزیزان ببینن به یک تعابیر دیگری مثلا اینها رو بیان کرده بحث الاموار و نورهای و از این نورهای در درجاته پایینتر که تصویر داره با بحث تشقیق در وجود که متفرعه بر اسارت وجوده البته خب حالا منسوب به شیخ اشراق ایشون اسارت الماهوی هست حالا این که نسبت کاملا درست تفصیحانه این اثارتون ماهیتی که ما میخواهیم ثابت بکنیم که ماهیت تحقق عینی و تحقق خارجی ندارد این رو اصلا شیخ شاه میخواسته بگه یا نه این حالا بحث دیگر که حق در مسئله این هست کسیم شیخه شاه همون شیخه رو نمیخواسته بزنه کلا یک است که صدرا این رو تحقی کرده و این نظام رو چینش کرده یعنی حتی در خود هکره مثلا در خود حکمت الاشراق و کلمات شیخ اشراق هم به این نهر رو نمی و نمی‌بینیم این رو نمی‌خاسته بگه حالا به هر حال پس این سوال مثلا شود که بین این وجود و اون حقیقت و ماهیت و ماهوی اون شی کیفیت اون شی کدوم که از اینها اصل و کدوم که از اینها خارج رو پر کرده خب ذهنیه بله اونها خودشون قرار دارن که ذهنی یا ذهنی محضت، توضیح میده، یعنی معقول ثانیه فلسفیه حالا الانی ها یه خب قیر راحت تر معقول ثانیه فلسفیه توضیح میده خب می می برای بحث مثلا به طول وجود، خب یه به ساده بخوایم این رو تقریبش بکنیم اینطور میشن باید که ثابت من این ترتیب که بشتم که درست چیدم باشه قبولین قبولین عدلی برای اصالات وجود که چیز میکنن بله عدلی, عدلی نفیز وجود اصالات وجود برای اصالات وجود اینه نتیز وجود لا وجود است اینکه همون عدم است عدم است بله خب. ارتفاع نقیزه این نحال است بس هر چیزی هر چیزی یا مستاقه نام به ذات وجود است مصطابه به ذات عدم قلق سر عدم یعنی با تحقق به هر چیزی که که تحقق دارد لا ادم هست و یعنی وجود است چهار آلم به دارد دارد این از روزه وجود که خب اینها میگن که خب ما بنا شد که ببینیم که خود حقیقت خارجی کدوم میکردیم در حمال الله اولا اشون که خب وجود در مقابل نقیض وجود چیه نقیز وجود لا وجوده لا وجود که همون عدمه خب در یکی از های منطقی و بنیادی ترین اصل و ابتدایی ترین اصل و اولی ترین اصل ذهنی انسان همون بحث امتناع اجتماع نقیزهین و ارتفاع نقیزهینه نمی شود بالاخره یک جای نقیزهین با همدیگه باشن نمی شود یک جای نقیزه با همدیگه مرتفع شود خب در تحقق عینی هم همینطوره نمی شود هم وجود باشد هم لا وجود ایشون میگن خب و لا وجود هم به برنای خود عدم دیگه لذا پس تمام هر چیزی وقتی که ارتفاع نقیزه محال شد محال شد هر چیزی هر حقیقت فرضی که در ذهن ما هست یا باید مصطاق وجود باشد یا باید لا وجود که همون عدمه یا باید مصطاق وجود باشد یا مساق عدم نمی شود خلاسه یکی از اینها خالی باشد یعنی مصطاق هیچ کدام نباشد یا مصطاق هر دو باشد خ خب موضوع ابتدایی ترین اصل ذهنی ما که همون بحث ارتفاع نقیزه این است خب عدم هم یعنی چی عدم هم که اصلا یعنی نیستی یعنی لا چیزی که هیچ نحوه حققی ندارد تا اینجا که خب اصل مفروضه و همه قبول دارن حالا بریم در خارج که همون همون محل دعوای ما هست که در خارج خلاصه وجود هست یا چیزی که در مقابل وجوده که اون ماهیت هست باشد. اینها میگن که در خارج هم خود خارج و خود هستی هم که اسم شما می‌ذاریم هستی یعنی تحقق یعنی بودن خب خود, خود تحقق مساوی شد مساوی شد با وجود دیگه مساوی شد با وجود پس عالم که تحقق دارد عالم یعنی وجود است عالم خود وجود است ثابت شد مثلا حل شد نه این بار بله چسته سال سال میشه کرد حیثیت تقریدی و تقدیر که خودشون میگن داره واسه اون بحث بحث, بحث شخصی که حیثیت تحلیلی عقیده که میگن نه که تو بد... اون یه اینجوری میگه تقریدی نیست چه چیز ساده نه بود متن هم نیست بحث حیثیت تقریدیه که در خود الهیات تقریدیه رو که ما توضیح هم دادیم توی بحث چیز که گاهی اوقات مثلا ما بحث ابتدای بحث بحث شخصی که حیثیت تقریدیه رو ما توضیح دادیم که گفتیم که مثلا یک حقیقتی رو یک چیزی رو که ما به یک چیز دیگری مجازن مثلا نسبت میدهیم اما مال چیز دیگری هست از همین تحبیر میکنم به حیثیت تغییریه. حالا مثلا یک تحبیر سادش هم گفتیم, گفتیم مثلا میگه من پنچر شدم، ماشینش که پنچر شده که لوقع یک نسبت مجازیست که به این هم میدم حالا این رو ارز میکنم توی ماهیت هم حالا میدسیم به این حالا تا اینجاش مثاله که ثابت شد یعنی بالاخره ثابت شد که خود حقیقت خارجی وجود است اینش که بحث ندارید حالا شما بحثتون سر اینه که آیا ماهیت رو هم ما میشود بگیم که ادم محضر است یا نه ماهیت هم شقیه از وجود است پس شما در اینجاست دیگه یعنی اونها هم میخوان دیگم که در بحث در بحث خود روتره شخصی اعتراض که بحث ماهیت رو هم که طرح می‌کنن که حالا در مثال‌هاش هم نظر من می می‌نم اشاره کردین نه می‌خوام بگم خب لاغرن ماهیت هم عدم محض نیست ماهیت هم یک نحوه به علاوه وجودی داره به نحوه معقول ثانی فلسفی قرارمون اما تا اینجاش تا اصلا تا وجود اعتباری رو حالا به این معنا که بالاخره یک منشأ انتزایی در خارج دارن میخوام بگم که پوچ محض نیست نیستی محض نیست مساقب ذات عدم نیست حالا ما اون اصلا کاری نداریم تا اینجاش برای ما مهمه تا اینجاش برای ما مهمه که بخوایم بگیم که پس حقیقت حقیقت عالم خارج حقیقت تحقق عینی شد وجود یعنی با این برهان که یا وجود یا لا وجود خب دیگه ارتفاع مغزیه که نقیزه یک محاله وجود یعنی تحقق عالمم تحقق دارد پس عالم خود وجود است تا اینجا که بحثی نیست چه شما اشکال دارید؟ ها خب تا اینجا که اشکالی پس عالم خود وجود است خب اینها میخوام بگن که تا اینجاش که ثابت شد حال بریم سر بحث این که دعوایی که حقیقت عینی خود وجود است یا ماهیت میخوام ببینن که اگر بخواد شما ماهیت رو چیزی در مقابل وجود فرض بکنید در مقابل وجود یعنی لا وجود نو وجود تا وجود این عدم لذا ماهیت رو به عنوان حقیقت در مقابله وجود ما نمیتوانیم فرض بکنیم این برهان هم که اصلا به ما گفت کل عالم هستی حقیقتش اصلا وجود یعنی وجود مثل یک قلمبیسی که اینجوری در تمام بالای رنگی که شما روی تخته بنویسید همه جا رو پر می کند وجود تو مهم ما اینطوری عرض می‌کنم چون در نقدش ما را اشاره بکنیم مثل مثلا رنگی که میریم باشه توی بالاخره تخته همه جا رو پر می‌کنه همینطور وجود نیسته شده در عالم خارج همه جا رو پر کرده حقیقت چیستیه حتی یعنی چیستی آدم خارج هم وجود است و ماهیت چیه و ماهیت بالاخره چیزی در مقابل وجود نمیتواند باشد چرا چون در مقابل وجود یعنی عدم و یعنی لا تحقق که این میشود به داخل اجتماع نقیزه اگر آلم خارج هم تحقق باشد هم لا تحقق جزا پس به اینجا رسیدیم که اصل در آلم خارج وجود است این برغان اینو به ما داریم که اصل در آلم خارج وجود است دور ماهیت اینجا چی میشه؟ نقش ماهیت اینجا چی میشه؟ اینها میگن ماهیت هم در اینجا عدم محض نیست درست است که ماهیت به عنوان چیزی در مقابل وجود معنا ندارد اما ما ماهیت رو به عنوان چیزی در مقابل وجود معنا نمی کنیم ماهیت رو یک انتظایی از وجود خارجی در نظر می گیریم کیفیت و شکل وجود خارجی رو وقتی در ذهن خودمون می‌آوریم، این می شود ماهیت پس این برهان به ما گفت که حقیقت عالم خارج وجود است اصالتی معنا کردیم یعنی اون چیزی که تحقق اینی دارد اون وجود است و ماهیت به عنوان اصالت چیزی که در مقابل وجود هست معنا ندارد و ماهیت نحوه وجود است نحوه وجود است پس خب این حرف حرفی است که بعدا اخره که در بحث عرفان هم میخوان تحقیق کنند و اونهایی هم که بالاخره بیشتر کار کردن در مباحث فلسفی به این مسائل معتقد شدن که ماهیت رو ما می‌گیم معقول ثانیه فلسفی. معقول ثانیه فلسفی چیه؟ اونی که درسته که ما به اذای عینی خارجی نداره. یعنی نمیتونید شما دقیقاً خارج رو مثلا مشخص بوبین، دست بذارید روی یک چیزی در عالم خارج بگید این است. مثلا کلی، کلی یا مثلا حالا یک حقیقت کلی رو شما نمی‌تونید بالاخره خود همین کلی به ما و کلی رو در عالم خارج دست بذارید دست روی مسادیقش می توانید بگذارید مغول ثانیه فلسفه اینه که ما به ازای عینی خارجی نداره نمیتونید دلکه از در خارج بهش اشاره بکنید اما منشه انتظار خارجی داره بله از هیچ و پوش منتظر نشده از یک چیزی در عالم خارج منتظر شده و ماهیت هم همون کیفیت وجوده همون انهاع وجوده همون حرف وجوده و حد و محدود وجود هر تا جمله تعبیر میکنن فقط حد وجود ماهیت فقط همون چارچوب کلی نه ماهیت نشان دهنده حد وجود و کنه وجود خارجی حقیقت وجود خارجی تو احسنتم تو لذا با این بحث به تو لذا با این بحث به اینجا رسیدیم که بالاخره اون چیزی که در قالم خارج هست اصالت خارجی داره خارج و پرتده همون وجود است خب تا اینجا که بالاخره وجود حالا اطلاع ما میخوام حالا همین جا برسیم میخوام این که پس با این برهان چگار کردن با این برهان بر ما ثابت کردند که یک حقیقت اینی یعنی چیزی اینجوری در عالم خارج هست به همه رنگی هست که ما ریخته میشیم در عالم خارج این شده وجود خب این بحث متناوی ازالات وجود شد که دیگه حالا در بحث وعده تشکیکی وجود اینجا به اینجا میرسیم میگن حالا وقتی که همه عالم خارج شد وجود خب پس به امتیاز این وجود ها چیست وقتی چیزی غیر از وجود نداشتیم ما وقتی تمام خارج شد وجود غیر از وجود مسابقه شد با عدم و با نیستی همه چیز باید وجود باشد خب دویت هر دویتی و هر غیریتی منوط هست به ماهیل امتیاز علاوه بر ماهیل اشتراک چه باشد چه نباشد اون چیزی که دویت رو برای ما میسازد تعدد رو برای ما میسازد کسرت رو برای ما میسازد اون ماهیل امتیازه اینا میگن خب حالا که ما رسیدیم که حقیقت عالم خارج وجود است چیزی اصلا غیر از وجود نمی تواند باشد پس مابهل امتیاز خارج چی شد یا باید بگیم که در عالم خارج هیچ کسرتی وجود ندارد هیچ دوییتی وجود ندارد خب درزادی که دنبال مابه الامتیاز هم نمی گیم همین وجود محض که سرایان دارد در تمام عالم خارج اون رو فرا گرفت است این, این خب این مدنه های وقت شخصی است. این های که بعد رو میگن میگن نه ما یه مابه الامتیازی برای شما درست میکنیم اما مابه امتیاز در مقابل وجود درست نمیکنیم مابه الامتیاز از خود وجود در میادیم که تعبیر میکنن مابه الامتیاز به همون مابه اشتراک برمیگرده بگم احساعتون خاسته کوپش دین نزدیکتر به ثبات و معاملات قامی. حالا حالا از اوناش میخوایم حالا برنامه ادلاشون بزنیم. ما اصالتاً ماهوی ماهیت نه اصالت وجود. اكثر میگم این دیگه چند حالا پس اونجا که مسئله ثابت شد. دنبال این رفتیم که یک مابهل امتیازی پیدا بکنیم برای اینکه تعدد رو پید پیدا بکنیم این وحدت شخصیاتی خیال خودشون راحت کردن. حزنا اگه مشکل شد بس بزنید این رو تکرار بکنید. این وحدت شخصیا که خیال راحت همین ما اگه ما میگیم یک حقیقت ایمانی شخصی خارجی است همو خداوند متعال همین وجودی است که شما میگه در ظهور اون همین حاله در ظهورات همین حاله در ظهورات حالا اون تو بحث چیزام حالا قصد کردیم دیگه توی بحث نقد بحثه شخصی گفتیم دیگه. گفتیم همون بحث ظهورات رو نمیدونم تشریف در ظهورات اینا یعنی واقع این واقعا همون استثناء نذره که اینها میگنن همون بالاخره تعددی که بالاخره خداوند متعال تنظل پیدا کرده نمیدونم تجلی پیدا کرده این کثرات به این نظور پیدا کرد این که خب می تراواز همون عدد دیگه گفتیم بالاخره دوئیتی پیدا اومده حالا اونجا مفصل بحث کردیم که اصلا وقتی شخصی خودش خود متناقضه یعنی خود مفاد وقتی شخصی خودش خودش رو نقد میکنه و کلام همونیه که معربی گفته باغ سلاغین ها نید ما به این امتیاز حالا که ارتدای راه میگه که من میخوام میخوایم میخوایم آمتر حرف بزنم همه رو همراه بکنم خب ما که این کسرات خارجی رو نمیفینیم بحث بکنیم آیه تبا طبع هم در خود همون بدایان آیه تبایی هم اینه کسرات بدیهیست ما درک کسرات برای ما است ما به وجدان درک میبانیم که کسرات هستم من هستم شما هستید همین افکار متعددی یعنی کسرات کسرات بناستن <تصفيق> دار لاری حالا بعدی بعدی بعد, بعدی بعد این چطور می شه بعدینی بهان عدله ای که چندان بعد میاد که اون درش بود بعدی باشه حالا بهش میرسیم بعد اینا شکار کردند گفتن خب پس ما باید كسرات كسراتو درست کنیم ما امتیاز این وجود چی شد نه در واقع تشکیقیه گفتن که مابه رو ما امتیاز رو از خود کنه وجود از خود وجود در میاریم میگیم مابهل امتیاز به خود همون وجود است و در شدت و ضعف است یکی از ما امتیازها در شدت و ضعفه یعنی همین وجود و همین حقیقت وجود میشود یک مرحله قوی داشته باشه یک مرحله شدید داشته باشه یک مراحله پایین و یک مرحله‌ای که دیگه در نهایت ضعف خودشونه که همون حیولاست یعنی از اون طرف به حیولا میرسند که دیگه تحبیرشون اینه که دیگه مثلا این قوه مهز هست از اون طرفش هم به خداوند متعاد میرسند که این دیگه در نهایت شدته تحبیرشون ف... میانی از هر مصادیق اقتراغون باغلتی اینی؟ حالا بحث علمی رو بکنیم ازم اینه که ك... فمثالام میزنه میگه که همین نوری که شما از یک چراغ این رو مشاهده میکنید در اون منبع در اون خورشید در اون چرا توی نزدیک به اون خودمون خورشید که دیگه شدت نوره هر چه به اون منبع نزدیکتر از این شدیدتر تا بنسه میرسه میاد در این زمین ما یا اینکه میرسه از پنجره رد میشه میاد تو اتاق ضعیف حالا از این پنجره هم کجا از اون اتاق رد میشه میره میره می سه تا دیگه به شدت نهایت میرسه اینجا هم همینطوره این وجود شدید خودش مآب الامتیاز شدتشه که در خود وجوده نسبت به وجودات ضعیف‌تر که اینها چی از مراتب پایینتری هستن لذا مآب الامتیاز رو ما پیدا کردیم که مربوط شد به خود وجود در مقابل وجود نشد و وحدت تشکیفی برای ما درست شد دهتر در تشکیفی یعنی که همه عالم سنخ سنخش وجود است اما نا خداوند متعال در یه جان هست، بقیه مخلوقات هم یه جان هستند، فقط اون از مرتبه قوی تری از وجود دهرمنده از بقیه مخلوقات کثرت درست شد اما خب کثرتی که تعبیر میکنن به کثرت مثلا به این نوع کثرت، کثرت تشکیکی، وحدت تشکیکی یا وحدت صمخی هم مثلا بهش میگن یعنی سنخش همون وجود است. حالا بعضی اشخاص میگن با اولین این ها اینها که اشکال واردی هم خیلی نیست. این میگم که شما بالاخره ما و خداوند متعال هم سنخ مییدید نه اینکه ما خداوند متعال هم سنخ مییدید ممکنه مثلا زمین طواسمون فهم بکنه اما میخوام میگم همه بالاخره جنسشون هستی است که نه همه عرض میکنم سن به همین معنا به همین معنا که همه بالاخره از جنس هستی و بودنه یعنی که در عالم خارج از زمین بله بلد احسان جون همین همینطوره همینطوری همینمخوازم همین بگم خدا رو تلعاشا نمیدونن یعنی بعضی‌ها به این اولین فلاسفه این‌نحوه اشکال می‌کردن که اشکالام بگویم باید دقیق اشکال بکنید میگه شما خدا از جنس ما میدید نه بابا کیم چه حسی رو زده سرخم که میگم به همین معنا یعنی بالاخره همه‌شون هستین خداوند مثلا هستیه در جای اشکال وارد می‌کنن که میگم بحث حضور و تجلی که میشه اونجا قضیه بس میشه و بحث اینکه تکی به من نه بحث و نه بحث وقتی شخصیه که از آن جهت سنجید نیست بحث اعیاده میگوییم که کسانی که ما دوی نداریم که دو همش بالاخره مجازی است و تازه اون هم که شما گفتید بحث بحث بحث که بحث بحث و هیجان تغییدی و هیجان نمادی و اونا رو کالو توضیحاتش می‌ده بحث قبول بود که بعدش رو شروع کردیم مورد تو انجاعات که میگن که مثلا ماهیت با این که هست در ذهن ما هویت خارجی ندارد تحت خارجی ندارد اینیاد خارجی ندارد، اما پوچ هم نیست یه منشأ انتظای دارد. اینو میخوان نظیر بیان به اینکه در وقت شخصی درست است که کسرات نیستن، اما پوچ هم نیستن. که نه من نقدش مفصل با کردیم و دیگه نبود الان به اونجا مراجعه کردیم. در نقد این مسئله که گفتیم دیگه اصلی ترین پای فلسفه صدراو دکمه مطالعه و فلسفه روز هست، نقدش خیلی واضحه ما میخوام بگیم که آجون شما بالاخره خب ماهیت رو که گفتید که بالاخره ما یک اون انتظاری که از آلم خارج از چگونگی و کیفیت عالم خارج میکنیم این رو ما میگویم اسم شیرش میگویم اه، اه، ماهیت در مقابلش یک مفهوم دیگه ای هست اسمش مفهوم وجوده اما سوال اینجاست که آیا هر مفهومی که در ذهن ما هست هر مفهومی که در ذهن ما هست حتما تحقق اینی و خارجی دارد به تعبیر دیگر خود اینها مثلا یک چیزی رو تعبیر میگنم میگن که جنس الاجناس اجناس عالیه که جوهر هست و در مقابلش نقطه عرز خب اینها میگن که چیزهایی هستند که دیگه اجناس عالیه هستند فوق اینها چیز دیگری نیست و نمیتوانیم در عالم خارج جنسی حقیقتی بالاتر از اینها پیدا بکنیم به حسب اون نوعیت خارجی اما باز ما از همه اینها مفهوم جنس رو انتظار می‌کنیم. خب این مفهوم جنس در ذهن ما انتظار شد اما اینیت خارجی ندارد چون خود اینها میگه که مثلا بالاتر از جنس و چیز دیگری نیست مفاهیمی در ذهن وجود دارد که اینها تحقق اینی و خارجی ندارد مفهوم وجود از کجا انتظار شد ما خودمون یادمون رفت اینجا این در درائلی که چینده شد یک مغالطه در اینجا رخ داد و اون اینکه درست است که ما یک مفهوم وجود رو انتظار کردیم و گفتیم که در مقابل وجود لا وجود است این قبول تا اینجا قبول که لا وجود همون عدم است تا دو میدونم هر چیزی مساق به ذات وجود است قبول ادم یعنی لا تحقق هر چیزی که لا تحقق هست یعنی که بداخل موجود نیست اون چیزی که تحقق دارد دکته اینجاست این چیزی که تحقق دارد و ادم نیست آیا اون یک جنسیتیس به نام وجود به نام وجود یا نه این وجود رو دارد به تحبیر ساده‌تر تر بابا جون اصلا ما مفهوم وجود از کجا انتظاه کردیم ما از این که در موجودات خارجی همه رو نگاه کردیم هر چیزی رو دیدیم که دیدیم این یک اصلای دارد که دارد ترد عدم می کند ترد عدم می کند هر کسی به وجود خودش بالاخره ترد عدم می کند هستی رو برای خودش ثابت می کند اینی که هست اینی که ما بهش میگیم فلانی بود و هست بودن و هستن به معنای این نیست که وجود یک جنسیتی باشد یک قلومبهی باشد در عالم خارج اسمش باشد وجود فقط خاصه صحیح چون باید دیگر حالا ما ارز بکنیم که بایجون ما وجود رو هم همه از آثار این اعیان خارجی ما وجود رو انتظار کردیم وجودم صرف انتظار بود از اثرات این اعیان خارجی درست از هر چیزی مستاق به ذات وجود هست وجود بهش بار می شود اما چیزی که وجود بهش بار می شود لزومن به این بنا نیست که یک حقیقت یک قلومبی, قلومبی جنسیتی باشد به نام وجود جنسیتی باشد وجود. به نام وجوده معنا نیست ما از آثار این اعیان خارجی که هر قدمشون هستی رو برای ما ساحت می‌کنن میگن هستن همین بودن که نسبت رو که به اونها انتظام میدیم ما این وجود رو هم انتظام میکنیم و ذا وجود یه قلمبه خارجی نیست که شما حالا بگید این قلمبه در خارج افتاد ما باید به کشش بدیم یا سرش خدای سرش مخلوقات نه بابا جون وجودم صرف انتزاه صرف اعتباره همه اینها اعتبار از اون اعیان خارجی به غنواقا اتفاقاً ولخرت اسالهش من اسالات ماهیت میخوته به اون تحقق و به اون ولخر واقعیت نزدیکتره که بالاخره ما اون کیفیات خارجی رو که حتی قابل اشاره هستن در عالم خارج بهشون اشاره میکنیم و این لزومن خود همون ماهیتی که ما داریم بهش اشاره میکنیم خودش یک اثری داره یعنی طرد عدم میکنه طرد عدم از موقعی اثر رو گذاشتیم چیه اسم این اثر رو گذاشتیم وجود لذا مفاهیمی که در ذهن ما هست گاهی هات از کنه ماهی از کنه اون این انتظام می شود گاهی هات از اثرش اگر یک کسی اثری دارد که مثلا این قمرو برطرف می کند سبب خوشحالی می شود ما می توانیم بگیم این جنسیتش خوشحالیه؟ نمیدونم میگم چه یه چیزی داره که مثلا سبب بر روشنایی میشوره میتونم بگیم که این جنسش مثلا چیه روشنایی نه بابا جنسش مثلا مادهی سفاکیزه این اثری داره خیلی چیزها داره دوایی که میگیم مثلا این سرماخوردگی رو برطرف میده یه چیزی به یک کسی میگیم مثلا حرارت بدن میره بالا تبزاست میتونم بگیم خودش تب تبزا فر میکنه با اینکه خودش تب چیزی که هستی چیزی که تارد عدم هست فرق می کند با اینکه خودش هستی باشد خودش جنسش وجود باشد لذا همینطور که ماهیت رو اطفال ماهیت رو به این معنا اصالت میگم حقیقی و بیشتری هم پیدا میکنه. لذا وجود شد اعتبار وجود شد اعتبار و اینم اتفاقا یکی از معقولات ثانیه فلسفی شد خلاست یعنی یکی از است که ما به اضای خارجی ندارد اطلاق قابل اشاره نیست اما از خارج هم انتظام میشه باید اصل اشکال رو هم عرض میکنم از کجا پیدا شد از ما تکمیلش کردیم اصل اشکال رو خدا آقای مثباه یادمه که توی این بحث تعلیق نهایی و اینها این بحث اصل اشکال رو تحت کردن که بلاخره آقا جون هر مفهومی که شما بلاخره نهایت ادعا دو مفهوم در ذهن ما هست اولا مفهوم خصوص مفهومو میخوید الزمان خلاصه بماتون دش بخارج خو خب از کجا هم بحث جنس و اجناس هم اصفهان مثال میزنن پیالا این روان به پایازی ترک کده بودن خودان اشقاله اصفهان چجوری جواب میده شما ساری پایازی موقع قدم چند سالهرب گفتش که ایشون که بله این لازمهش میاد که لازمهش میشه تعلیل علم اگر بخواید شما در مفاهیم ذهنی تشکیل بکنید بالاخره هر مفهومی که در ذهن شما میاد تشکیک بکنید که این حالا عینیت خارجی داره یا نه لازم اتمنید که کل قلوم رو تحقیل بکنیم هر چیزی که شما نسبت با حالت تصور میکنید تشکیک میکنید که این خارجیت داره یا نه که ما در جواب این رو از میکنید که بابا جون خود ذهن ما میفهمد که این رو از کجا داره انتظاه میکنه بابا جون الان در اینجا خود ذهن من این رو داره از اثر انتزاع میکنه وقتی داره از اثر انتظام میکنه خود ذهن من میفهمد که این مفهوم وجود رو دارد از چیزی انتظام میکند که خودش ما به ازای خارجی ندارد کجاش میشه بحث تحتیل؟ بله شما بالاخره تو تمام مفاهیم ذهنی چه حرف رو بزنید؟ بله موجبه میاد که مثلا تحتیل کل علوم اما وقتی که ما در مفاهیم تفقیق قائلم این مفهوم رو چون میدانم از اثر انتظام کردم خودش اصلا ما به ازای خارجی ندارد می گویم بالاخره خارجی نیست و همه در همه مفاهیم که نحف رو نمیزنیم لذا محصر کلاب همین شد که بابا جون اصلا خود وجود یک قولونده خارجی یک حقیقت خارجی نیست که شما گیر بکنید که ببینید که پس خارج شد وجود بودیم ما دنبال ما به الامتیاز که ما به الامتیازی پیدا بکنیم چیکار بکونیم حالا ما به هم از وجود باشه نمیدونم دست شدت ضعف و, و بعد از یا اونایی که دیگه میگن بعد از چرا میگید بالاخره لب کلام همون وقت از شخصس به اینجاها رسید ناواجون تمام در عالم خارج حقایق متکثره متباینه هم هم هم, هم نسبت اصلا نگام جدا هستن اما همهشون بالاخره میشونیم بهشون بگیم هستش هستش این هستش یعنی که بلاخره یه قلومبه ای وجود نه که بود دارد یعنی که تارد عدم است از تارد عدم ما تعبیم میکنیم در هست لذا پس بحث اصالت وجود که تمام مدعاش اینه که میخواد بگه وجود یک است که تحقق اینی دارد و تحقق خارجی دارد این هست این باطله وجود احسنتم و احسنتم و یک که خودمون گرسیم از اون اثر به ما تا دادم رو انتظار کنم هم شد معقول ثانیه فلسفی و تا آقا هم قبلا بخواهیش همون به تو گفته بود بله نه بخواهیش بکنم که بخواهیش زود رفتیم سر اصل مسئله به هر از جای دیگری به این صحابته بود اما سر عدله وحدت شخصیه را چند تا وقتی هم خوکو به یه چه دیگه وقت هست عدله وقتد شخصی وجود خب اینها عدله مختلفی دارن مهمترین دلیلی که برای وقتد شخصی وجود بیان میکنن که بعضی این آقایون هم که طرح تهم میکردن اطفاق سوال پرسیدن جلسات قبل که حواله دادیم همه رو به این خودشون هم میستن. مهمترین دلیلی که می آوردن 88 سال دلیل هستش و ممکن ادله فرعی هم زیاد پیدا بشن چون هر و این طلب اون در بالاخره عدله زیادی بالاخره بشه به حساب عقلی که دیگه هم اصلا دلیل عقلی نمیشه حساب کردن همین اصلا هم نمیشه دلیلی درمیاد حالا حساب کرد مهمترین دلیلی که برای بحث بحثه شخصی امور همی میارن همین بحث نامتناهی بودن خداوند متعال است که بعد خود فیازی فیاضی که خود آقای توی تمام عدل وحدت شخصی وجود تو هم یکی گیر کردن بقیه عدل را هم آقای جوادی باطل می دانن. فقط روی یکی نتونستن جواب بدن این رو بالاخره از این جهت منگزم شدن آقای حسنزاده که دیگه حسایی ایشون که همینطوره همینطوره همین حالا جدای آقای حسنزاده و بعضی از که سالها تو قوم بودی می که ح اونها انگاه می حالا نه آی حسن زاده از کسان دیگری که گروه هایی که در قم بودن اینها عجیب بودستن مثل از وحیم شدیدتر بره بره حالا بعد از کلاس به بره اززان از بره سلامون این این رو هم فکر می کنم به اون کامل بخش دنیسم باد رو. این کل مده های این مهمترین بلیل عقلی وقتی شخصیه بوده اولین مقدمه این که پیام میتونه که میگنیم که خب چیزی که مسلمه اینه که خداوند متحال به هیچ نحوه ترکبی ندارد و خداوند متحال مرکب نیست چرا؟ چون هر چیزی که مرکب باشه یعنی زی جوز باشه زی اجزا باشه خب اولا به اجزا خودش برای بودنش نیاز داره و نه تنها که افتغار وجودی دارد یعنی به حسب وجودی نیاز به غیر از خودش دارد بلکه به حسب اصل بودنش و اصل تحققش هم وجودش متفرع است بل وجود اجزائش هر مرکبی اول باید اجزائش محقق بشه بعد باید خود مرکب شکل بگیرد یعنی تا اجزائه مرکب محقق نشوند اون مرکب شکل نمیگیرد اگر خداوند متعال بخواهد مرکب باشد بخواهد جز داشته باشه یعنی اولا خداوند متعال نیاز دارد به حسب وجودی به اجزائه خودش دیگه این خلفه وجوب وجود است اینی که میگیم خداوند متعال واجب الوجود است خودش به ذات بز به ذات بودنش واجب است نیازی به غیر ندارد اولا این خالف میشود یعنی که افتقار وجودی به غیر از خودش داره این سلسله ای که ما در برهان واجب الوجود برای اثبات خداوند متعال به کار میبریم این سلسله خلاصه قطع نمی شه همینطوره تسلسل ادامه به ادامه میکنه حالا اون دیگه در بحث های کلامی و اینکه اصلا اینی که خداوند متعال اول از همه چیز هست این هم خداسه زی سوال می روید خداوند متعال وجودش فرد است بر اون خداسه اجزاء خودش باید اول اجزاء خداوند متعال محقق بشه در بر خداوند متعال بخواد این مرکب شکل بگیره که همه اینها خلف واجب الوجود بودن خداوند متعال و اینی که بودن خداوند متعال به ذات مربوط به خودش هست خود به این میشوند که حالا دیگه این مربوط به یه مقدار هست که مربوط به های خلاصه هست دوم ها که این وحث براغید واجر وجود رو میکندیم پس خب تا اینجور که مشکلی نداره مجرد نه مجرد نه مجرد اصلا تحبیر مجرد نه بخواهم بیکار بگیم بخواهم بگیم که حالا بحث مجرد دسته بحث... حالا اون سردار خود دستوری است. اصلا می اول اون بحث دیگری است که حالا ما یک مقاله‌ای هم داریم منو چاپ نشده یه چند سالی هست. خلاصه صرف خلاصه مجردات همه زیرابش زدیم هم بحث عقلی بحث شد حالا بحث حساب خری حالا بحث مدرد هم بحث مجرد هم نمیخوام خداوند مطال پس به نتیجه می که وقتی خداوند مطال مرکب نشه خداوند متعال بسیده یعنی اجزا نداره. و لازمه بسیط بودن چیه هر چیز بسیط دیگه چهارچوب و حد نداره چرا؟ چون به مجرد اینکه یک جایی این وجود بسیط هر پیدا کرد بتونیم دیواری براش فرض بکنیم باز میشه مرکب لاقل میشود مرکب از دو جز مرکب از حد و محدود لاقل جا مرکب از دو جز لذا خداوند لذا وجود بسیط وجودی که نامتناهی هست و خداوند متعال به این نتیجه رسیدیم که هر وجودی که خلاصه مرکب نیست و بسیط است لازمه وجود بسیط این است که هیچ نحوه محدودیتی نداشته باشه که این یعنی خداوند متعال نامتناهی است به مجرد حد و دیوار ترکب هم دنبالش میاد وقتی که خداوند متعال نامتناهی شد وجود نامتناهی متناهی باید یه اسمش هم روش دیگه تناهی نباید داشته باشه همه جا رو باید فرا گرفته باشه همه جا و همه چیز رو باید فرا گرفته باشه و اگر یک جایی باشد که در اونجا نباشد خدایشها زیاد میگن مثلا شما قصد که این وجود است که همه جا رو فرا گرفته یه جایی باشد که اونجا نباشد این با میشه حد خداوند متعال و خالف بودن خداوند متعاله و اصلا وجود نامتناهی در همون روز چهارم وجود نامتناهی باید همه چیز باشد. مندا می‌کنم بندا و فرتادرین. وجود نامتناهی باید همه چیز باشد چون به مجرد اینکه یک چیزی یک غیری رو ما در مقابل این وجود نامتناهی فرض کردیم که این وجود نامتناهی ما باشد یعنی که ما دوباره چارچوب و دیواری برای این وجود نامتناهی فرض کردیم که این باز دوباره یعنی خلف نامتناهی بودن خداوند متعال به نامتناهی نبودن یعنی مرکب بودن تماما توالیه فاسده. خب معنای این کلامی شد که خداوند متعال همه چیز است. کلا از این هم تحبیل رو به یک اصطلاح ترسری که خود اینو یعنی رو هم صدرات تحبیل میکنه میگه بسیط الحقیقه کلل اشیا ولی تبشه ای امنها کنم آرها تصمیه نشه همون مهمه کلل اشیاه بسیط الحقیقه چیزی که ترتب ندارد چیزی که ذاتاً بسيطه است لازمه اش اینه که همه اشیاء باشه همه اشیاء باشه و الا چه والله خالص به ساحت. مثلا میگه تعالی کار چرا مثلا مثلا حالا ولیس به شیء منو احسن تو این تته مشه که البته به یک خود از به خصوص خصوصا نمیتونیم بگیم اون نهاییه دیگه که حالا اینا بحثش فصل بزرگه پس یعنی خلاصه دوباره تیر بکنه شما در زن خلاصه همین یک رنگی رو خلق بکنید که همه جا این خداون نال نامتناهی همه جا رو فرا گرفته اگر بخواد یک غیری غیر از این کله باشه بعض خلاصه داه از این جدا بکنیم که این همش ت خوردن این وجود نامتناهی ای است خلاص مقی برهانی که برای بحث بهتر شخصی وجود میان همین دلیله در شد که آی جواددی یا خلاصه این دلیل گیر کردخوابیم خب مثل بله اینطور شد. بحث بحثه شخصی ما فاضلش گذاشتین، گفتیم که به حقیقت اساق به ذات وجود نیستن بلکه به العرض و اینها الهالی هستند. خودتون خب مفصل کردیم دیگه گفتیم که حقیقتا مستلزم ترکب مستلزم نمیدونم تناقض اینها رو اما ابتدای بحث بحثه شخصی اینو طرح کردیم احسنتون یعنی حالا جدا از مفاد بحثه شخصی وجود اینها بالاخره در ذهن همه هست. حتی در ذهن قائلین اینهام همه هست. تاستم که از این آقایون گفت بالاخره چیکار می‌کنه خب این درسته این برهان مثلا به حسب ظاهرش ما رو به این میرساند اما خب وجود تغییرا خود رو خودمون رو بالاخره چجوری حلش بکنیم تصورش مشکل دیگه مثلا این آقایون مینا ابيسات دیگه همین که برهان ما رو به اینجا میرساند لازم اون رو باید حلش بکنیم یه جوری بالاخره باید ما تصورش بکنیم که همین مثال هایی که زدن دو یه جوری تقریبی ذهنی این مسئله است. و الا بر لاین حل برای مسئله و حالا میگن اینکه انقدر باعث این رو عادت بکنه عادت کنه تا به اینجا برسه چون بالاخره برهان داره با سی عادت کرده بوده براش خیلی عادت شده بله بله در حال میگن برهان ما رو داره به اینجا میرسانن این مساله حلله برهان کسی اشکالی نداره بین برهان بین برهان کسی اشکال نداره واقش کنیم خب، حالا هر نردش رو که عزیزان چندتا نردش رو بهشنما از خودش پتن کرده کلی مسئله حواصی به حواس خب، مالا اگر نرده موید نای جوادی همونش نای جوادی خب نرده سرزیده خب، همه نردگار رو بفهمت بله؟ چون اینکه من اصلا نمی‌دونم حالا ممکنه اخیرا اونای جواظی هم مثلا برگشته باشن شاید چیزهای نقل کردن حالا من همین روی پایازی نقل کردم هم نوشته‌ها روی دیدم که بازویشون هم اشاره کرده که مثلا شیخ نور اصفهان نور مثلا چه تا کرده شنیدم اون اخیرا روی جواظی خیلی رجوع کردن از این سری از برای نغزشون حالا چند تا کلاس برای اینکه بالاخره ذهن منحرف نشه 99 بده. بده؟ نه نه من گفتم اینجا. ما به عنوان طرح در مکانوس in yeah the to شوار کنیدو موجب زیر جوز دلیلی ها دلیل موجب زیر جوز شدن یا دلیل زیر بودن موجب زیر شدن چه میشه هر دل جوزه از مکان در مواده جوزه از آنشه از آنشه آوره من نخواب این اولیین نقدی که به شاننده نقدی من خیلی گشتم دنبال جایی پیدا میکنم جایی پیدا نکردم متاسفانه کسی رو ندیدم به این نقد اشاره کرده باشهله؟ آ من ندیدم ات واقعا خیلی کتابهایی که کتاب این کسانی که من دیدم که مثلا خب خوبه خوب خیلی خوشحال که کسی رو پیدا کردم به ذهن خود ما رسید اما خوب کسی دیگری رو ندیدم اما خب نقد وارد این س اولیین ذریعہ زرمنم به کی نقطه ای که منطوره اینه که نکته ای که وجود داره اینه که آقا جون بسیت الحقیقه کل الاشیاء ولیس بشیئ منھا ها الله الرحمن الرحیم شما بر ما ثابتش بکن همین اول شما بر ما ثابتش بکن ناخداگاه اینها خداوند متعال رو اینطوری در همه امکنه در همه مکانها همین شکلی که ما کشیدیم اینها ها ناخداگاه در ذهنشون همین میاد و خداوند متعال رو اینطوری نامتناهی فرض میکنند که در همه مکان ها باید باشد بعد یک مکانی رو که ما بخوایم مثلا یک جایی رو بخوایم بگیم اینجا خدا نیست به کسی دیگری هست اینجا ناخداگاه یک چارچوب مکانی خداوند متعال میخواد و خب چارچوب مکانی یعنی زیر جزء بودن و جزهای مثلا مادی پیدا کردن لذا اگر مثلا شما همین نامات ناهی بودن خداوند متعال رو در غیر فضای مکان در غیر از مکان در نظر بگیرید آقا شون در لا مکان خداوند متعال وسیط است در مکان هم الا ماشالله موجودات موجود هستش چه تضاد و تنافی وجود دارد؟ اینی که وجودهای موجودات و وجودات اغیار بخواهد منافی باشد با عدم تناهی فقط در فرض مکان بودن است که در یک مکان بالاخره باید یا من باشم یا اون باد باشه و الا یک وجود بسیط وجودی که زی اجزا نیست وجودی که جز این ندارد میتواند باشد و در مکان و امکنه هم موجودات مختلفی باشد اصلا اینها تضاد و تمافی ندارد میگم اگر در غیر فضای مکان در غیر فرض مکان این رو تصور بکنن اصلا نمیتوانن این بسیط الحقیقه کل اشیاء رو حتی به ذهن خودشون این تو تصور رو تصور نداره تمام تصور تزاهم در فرض مکانه یعنی اینا اول نامتناهی بودن خداوند متعال رو نامتناهی مکانی در نظر گرفتن، بعد گفتن بالاخره در این مکانیام من باز باشم، من باید خداوند متعال بشه، بالاخره نمیشه که خداوند نم باشه پس من نیستم، همه خداوند متعاله و اصلا همین مشکل به بعضی از نما گفتم که وايره خب خداوند متعال نامتناهی مکانی است. حالا دلیل دوم رو که خیلی اشاره کردم با فرض مکانی بودن میخویم این رو بکنیم اما اصلا مکانی بودن نامتناهی مکانی بودن تمکن در مکان یعنی مجوز بودن وقتی چیزی در مکان قرار می وقتی یه این مداد رو با دست خودم میذارم این جز از بالاخره این قلم اینجا این مکان قرار بیاد این جزش اینجا قرار بیاد این جزءش اینجا قرار گرفته، تمکن در مکان اصلا یعنی هر جز در هر جزئی از مکان در مقابل جزئی از این شیء واقع می شود و اصلا چیزی می تواند متمکن در مکان باشد که زی اجزا باشد حالا اینا میگن خداوند متعال نامتناهی در مکان است خداوند متعال نامتناهی در مکان است لازمه این حرف است که خداوند متعال بی‌نهایت جز داره دیگه او از همه چیز خرابتره یا مکان نامتناهی فرض مکان هم نامتناهی باشد بهلاخر هر جزئی از مکان در مقابل جزئی از این واقع می شود لازمه هر این از که نه تنها خداوند متقال بسید نیست بلکه از هر مرکبی هم مرکبتر هست هر هر هر زی هم زی اعزا تر هست و افتغارش هم شدید تر هست. بل احسان تو بگه حالا اون که زی اعزا بودن احسان تو متفقه و خودش زی اعزا بودن یعنی حادث بودن همه اینها هست برای اشتغالم طبیعتاً اگه بالاخره ما مثلا 10 تا جثه جزت تا جثه میلیون تا جز داریم به اینا نیاز داریم خداوند متعال دا خدا دیگه من خدا شوخی خداوند متعال دیگه به بی‌نهایت جزء نیاز داریم خیلی افتضاح و اتفاقاً همین از اون هم در تعابیر روایی خدا هم همینطوره یعنی حالا بعداً می‌رسید در تعابیر فراوانی در توحید و جای دیگه می‌بینید که عین الان بلاعن در متعال مختلف خداوند متعال اصلا مکان ندارد ها این غلط است که خداوند متعال مکان دارد حالا چه پس بگیم خداوند متعال نامتناهی است یکی از جورهایی که میشود تو بگیم خداوند متعال نامتناهی است خداوند متعال نامتناهی در کمالات هر چیزی رو که ما فرض بکنیم هر کمال به آخر این دنیوی رو فرض بکنیم بدون اینکه از این سقف باشد هر قدرتی و هر خود نفس کمالی برای محاصله است نه از اون سقف اما اصل کمال به اصل کمال به نحو بی‌نهایت در خداوند نمرات موجود است فر اینطور میتونیم به خداوند نمرات نهایت است کل کمالات و این همیشه هم تعبیر کرد خداوند متعال جز ندارد و بسیط است حالا بسیط است شما هرجور میخواهید تعبیر بکنید اگر همین بسیط است تو بخواید بگید خداوند ما متعال نامتناهی سو اشکال نداره تعویلی در اسم نداره اما بسیط است شما نبرید روی این که خداوند متعال نامتناهی در مکان است این غلط است و خداوند متعال است تمکانی در مکان ندارد چه اینکه بخواهد نامتناهی در مکان هم باشد و اصل اینجا هم اشاره کردیم یعنی شما فلواقع از این که خداوند متعال بسیطه است رسیدید به این که خداوند متعال نامتناهی است اما از این نامتناهی میرسیم به این که خداوند متعال خیره بسیطه است که این دور سریح و تناقض سریحه لازمه این هر خب این اشکال اولی که خب کمتر این رو ترکیدن و اصل جوابان همینه خب این اشکال بود. بله، تا باشه، اشکال دوبون، ثبون که بر فرض عدم تناهی و بر اینکه خداوند مدارمت ما متنای مکانیم هست ما این را جواب میدیم، اساسی هم جواب میدیم و میگم به هر این میرسه که دیگه این قوی ترین برهان وحدت شخصیه اون این تو شده افتزاخترین برهان، افتزاخترین میشه. که دیگه هیچ تهر به دفاع صلی الله علیه محمد صلی